بسم الإله العالي أبدأ به ما قالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصالي راديوية صدايا جند الله روية موجي يكسددو أعشاري هاف اف ام قد فخت فيه بالذي جال به خيالي في مجمع رأيته يسعى إلى الكمال رادیوی صدای الله برنامه از جمعه تا جمعه را خدمت شما تقدیم می نماید بسم الله الرحمن الرحیم جمعه همدسانه و صفات بر خداوند یک و به و درود و صلوات پایان بر رسول معظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر اصحاب و یاران ایشان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با تشریف سیومین برنامه خبری رادیوی صدای جندالله خوش آمدید خدا کنه که صحت و عفیت بوده باشید و روزهای زندگی را با امور جهادی پیش ببرید از خداوند متعال به تمام کارهای شما برکت و ثبات را طلب داریم سخن از یاد نمی کنیم اکنون توجه شما را به خلاصه رویدادهای یک هفته گذشته جلب می داریم <تصفيق> Yarabbi Fajmarhumalana Bandhudasulati Waifumu Yarabbi and Zavin Juma Chorda is Safar فعالان سیاسی سعودی میگویند که ماموران پلیسی این کشور در مناطق شرقی قطیف شامگاه پنجشنبه 27 دسامبر یک معترض شیعه را با ضرب و گور کشتند قطیف تا یک سال اخیر معمولا صحنه تظاهرات ضد دولتی بوده است و با گزارش خبرگزاری با کشته شدن این معترض شمار کشته شدگان در این منطقه در سال جاری بعد دوازه نفر رسیده اند فعالان سیاسی می گویند که احمد مطر 18 سال عمر داشت در جران تظاهرات عده از موتاریزان به بازداش های سیاسی در قطعه و در پی تیراندازی به هدف پلیس از سای موتاریزان کشته شد. روز شمب 15 سفر متابق 29 دیسمبر. گزارش ها می که ساعت 2 و 22 دقیقه شب شمب زیرزیلی به قدرت 5.8 درجه بخش های از افغانستان را لرزنده است. بر اساس مرکزی مرکز این زلزله در 73 کیلومتری شهر ایزابات مرکز اولایت بدخشان ثابت شده است. بر انزل این زلزله بخش‌های از اولایت تخار، قندوز و نیست مستکان خورده است. با تاریخ مقام مقام‌های پاکستان می‌گویند که در یک انفجار در شهر کراچی حداقل 40 کشته شدند. این انفجار در یک سرویز رخ داد که بیش از چل تن دیگر زخمی شدند. سیمی جمالی یک دکتر شفاخانه در کراچی گفت: وضعیت سیهی هشتن از دخمی های این حادثه وخیم می باشد به با تاریخی مذکور در سر حملات طیره های بدون سرنشین امریکایی تن در وزیرستان شمالی شهید شدند خویت این چه هدا تا کنون معلوم نیست با تاریخ مذکور تظاهرات علیه فرماندهی پلیس ولسوالی مالستان ولایتی غزنی به خشونت کشیده شده و یک نفر در این حادثه کشته شده است این فرد زمانه کشته شده است که مردم به سوی فرماندهی پلیس هجوم آوردند و می‌خواستند با زور وارد مقر فرماندهی شوند به گفته سخنگوی والی فرد کشته شده یکی از متریزان است اما چمنشاه اعتمادی نماینده ولایتی غزنی گفت که فرد کشته شده پلیس و از اهالی محل است روز یک شنبه سفر مطابق سی دسامبر در نتیجه یک انفجار در جنوب فیلیپین حداقل شش نفر زخمی شدند یکی از افسران پلیسی فیلیپین گفت بم در عقب یک سرویس نقلیه کارگزاری شده بود و اواخر روز شنبه هنگام عبور این موتر از شهر ایسولان در 970 کیلومتری جنوب پایتخت مانیلا منفجر شد قوت انفجار شیشه های یک سرویس دیگر را شکستاند، راننده و دو مسافر را زخمی ساخت. با تاریخ مذکر، در انفجاری که سرویس های نقلیه زا ایران شیعه را در جنوب پاکستان هدف قرار داد، حدیقل 19 نفر کشته شدند. این حمله در منطقه مستونگ بلوچستان رخ داد و 15 نفر دیگر زخمی شدند. حداقل دو پلیس نیز در این حادثه زخم برداشتند. مقامات در پاکستان در ادعاهای تحقیق میکنند که گویا یک نوی شربتی صرفه باعث مرگ حداقل اقل 24 تن در سی روز گذشته شده است این افراد در شهر شرقی گجرانوالا و رسته های اطراف آنجان داده اند پلیس و دکتران میگویند اکثر قربانیان ماتاده نمواد مخدیر بودند که این شربت را به خاطر آنکه نیش آوره است نوشیده اند و پینجا و دیگر این شربت را نوشیده اند حالا در شفخانه های شهر مذکور بستری هستند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که در سال دو میلادی بیش از هزار سرباز ارتش کشته شدند که این بالاترین آمار تلافات سربازان ارتش در جنگ با مجاهدین در ظرف یک سال است. ظاهر از ایمی سخنگوی این وزارت گفت که تلفات سربازان امسال در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته است او افزود در نو ماه گذشته بیش از 906 سرباز افغان کشته شدند به طور مجموعی 1056 سرباز در سال 2012 کشته شدند و 75 درصد این سربازان در انفجارهای کنار جاده کشته شدند به گفته مقامات دولتی نفوذی مجاهدین در صفاف ارتش و پلیس از دیگر مشکلات در برابر نیروهای امنیتی افغانستان است آنچه که حملات مجاهدین به جامعه اصاکر افغان خونده می شود از نشانه های رخنه نفوذی مجاهدین در میان این نیروها است در سال دو میلادی میلاده بیش از پینجا سرباز آموزگار و مشاوران خارجی و شمار قابل توجهی از نیروهای داخلی در اثر این گونه حملات کشته شدند. با تاریخ مذکر، مقامات پاکستانی میگویند که تحریک طالبان پاکستان دست کم تن از شب نظامیان را که در جریان حمله به استادگاه های بازرسی در نزدیکی پشار ربوده شده بودند گوشته اند، گفته می شود که دو نفر از ربوده شدگان گریخته اند، که حال یکی از آنها بخیم گزارش می شود، و خدود دوستن از مجاهدین تحریک طالبان پاکستان روزی پنشمبه دو استگاه را به تصرف در آورده و سربازان را اسیر کردند سلاح های موجود در استگاه ها را تصاحب کردند و ساختمان را به آتش کشیدند باز هم پاکستان، مقامات پاکستان میگویند که در اثر انفجار بم در کنار اتوبوس حامل زائران شیعه در جنوب غرب این کشور دست کم 19 نفر کشته شدند. با گفته مقامات محلی در این حمله که در منطقه بلوچستان پاکستان رویداد، بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. در سالهای اخیر خشونت‌های فرقه‌ای در پاکستان رو به گذاشته شده است. در ماه گذشته در اثر انفجار بم در شهر رولپیندی 20 شیعه کشته شده بود. مقامات پاکستانی میگن که حالی بعضی از زخمی ها وخیم است و ممکن است که شمار شدگان افزایش پیدا کند. گفته شده که کاروان زایران زا شیعه برای زیارت آزم ایران بودند. روز دوشنبه هفته سفر متابقه 31 دسامبر گزارش از ولایت بدخشان در شمال شرقی کشور حاکی است که بر اثر برفکوش در شماری از مناطق این ولیت سیتن کشته و چهارتن دیگر زخمی شدند. سخانگوی والی بداشان گفت که بر اثر رزیش برفکشت در قرگه سرخیل ولسواری کوهستان این ولیت سیتن کشته و چار نفر دیگر زخمی شدند. با طریق مذکور، به گفته مقام های امنیتی ولایت کنر در اثر حمله یک تیاره بی پیلوت نیروهای اطلاف در ولسواری غازی آباد هفت فرد مجاهد شهید شدند. هشت تانکر تیل در ورات ننگرهار حریخ شدند. سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار گفت که این حادثه شامی روزی گذشته در ولسواری بهسود رخ داده است. این آتش سوزی توسط تیم اتفایه خاموش شده و در این حادثه یک تن دیگر زخم برداشته است. مقام های مصر میگویند که در انفجار یک بم در یک کلیسای قبطی مصر در شهر مصراته لیبیا دو تن کشته شدند و حد یقل شدند. پاکستان در ماه نویمبر امسال نه 13 عضو وی گروہ طالبان را پس از سفری هیئت شورای عالی اسلامی افغانستان به این کشور آزاد کرد مقامات پاکستانی گفتند که مولا نورالدین ترابی وزیر عدلیہ رژیم طالبان و چهار عضوی دیگر این گروه را از زندان‌های پاکستان آزاد کردند زبیح اللہ مجاهد سخنگوی طالبان نیز آزادی آقای ترابی را تایید کرده است با گفته بنقومات دولتی سه عضو دیگر آزاد شده مجاهدین عبارتند است مullah عبدالباری والی پیشین طالبان مullah الله‌دت معاون پیشین وزارت مخابرات طالبان مullah اعظم یک محافظ پیشین امیر المؤمنین مullah محمد اومر مجاهد حفظه الله اما نظر میرسد که هیچ یک از چهره‌های برجسته طالبان در میان این افراد نبودند مولا عبدالغنی برادر فرد شماره دومی مجاهدین امارت اسلامی است که هنوز در پاکستان زندانی است با تاریخ مذکور انفجار چند بم در عراق به کشته شدن دست کم 10 نفر و مجروح شدن بیش از 40 نفر منجر شده است بر اساس گزارش‌های دریافتی در, در یکی از خونینترین این حملات 7 نفر در شهر مسیب در جنوبی بغداد کشته شدند. انفجاری بمبی در یک سرک شلوغ در شهر حیله در جنوب کشور نیز به کشته شدن 2 نفر منجر شده است. در سال‌های اخیر از میزان خشونت‌ها در عراق در مقایسه با سال‌های 2006 و 2007 ملادی به میزان زیادی کاسته شده است. در مناطق شرقی دیاله‌ حمله به زایران شیعه در جریان یک مراسم مذهبی باعث زخمی شدنی 9 نفر شده است روز سه شنبه 18 سفر مطابق اول ژانویه منابع خبری در غرب کشور میگویند که دو سرباز اردی ملی در ولوسوالی کرخی ولایت هرات شامی روز دوشنبه کاروان سربازان هسپانیایی را هدف حمله مسلحانه قرار دادند یک مقام معتبر محلی در غرب کشور میگوید که افراد حمله کننده نظامیان لویعهدی سیومی اردی ملی مربوط به ولایت بادغیس بودند و افزود که در این حادثه به سربازان اسپانیایی آسیبی نرسید، اما هر دو سرباز اردی ملی از منطقه فرار کردند. در همین حال یک تن از شاهدان عینی میگوید که در این حمله سه سرباز اسپانیایی زخمی شدند. زبیح الله مجاهد این حمله را به اوده گرفته گفت که در این حمله چهار تن از سربازان اسپانیایی کشته شده است. یک پلیس در ترینکوت مرکز ولایت اروزگان خانه مو یک پیسر جوانش را به قتل رساند. غلام دستگیر که در قماندانی عملیاتی پلیس کار میکرد شب گذشته خانم و یک پسر هفته ساله خود را در نتیجه درگیره های خانوادگی از بین برد و غلام دستگیر از صاحه فرار کرده است و دو طفل پنج و دو ساله غلام دستگیر بیسر پرست باقی ماندند با تاریخ مذکر، مقامات ولیت کنر میگویند که در اثر اصابت دوازه فیر بر ورسوله سرکانوی این ولیت یک زن کشته و سه طفل زخم برداشتند. گزارش ها که در نو ماه سال روان هجری شمسی بیش از هزار راکت از آن سوی سرحد بر مناطق مختلف کنر پرتاب شده که در نتیجه آن در حدود تن کشته و زخمی شدند. در موجی از انفجار و تیراندازی ها در سر تا سر روز روزی دوشنبه حدیقل به سودود انکشته و دهات دیگر زخمی شدند. مقام های ایراغی میگویند که حدود پانزه بمگزاری و تیراندازی در جنوب شمال و مرکز ایراغ رخ دادند. در خورینترین حمله در شرک المسیب هفت ازویق خانواده کشته شدند. مقام ها گفتند این افراد ظاهران به خاطر شیعه بودن هدف قرار گرفتند. مراسم استقبال از سال نو در ساحل آج ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. راژیو کشوری کشور آفریقای گزارش داد که در اثر ازدهام جمعیتی که برای مشاهده آتش بازی در استادیوم ورزشی ابیجان گرد آمده بودند دست کم 60 نفر زیر دست و پا کشته شدند. این مراسم در ساعات آخر روز دوشنبه و به مناسبت فرارسیدن سال نوی میلادی برگزار شده بود و ستها نفر در این استادیوم حضور داشتند. مقامات سازمان های امداد برسانی گفتند که در این حادثه حدود دوصد نفر دیگر نیز زخمی شدند. سه سال پیش نیز حجوم جمعیت در جریان مسابقه فوتبال در عبیجان قربانی بر جا گذاشته بود. این نخستین باری نیز که زهام جمعیت و بینظمی در یک استادیوم ورزشی در ابیجان تعدادی را کشته و زخمی کرده است. نیروهای امنیتی ائتلاف به رهبری آمریکا روز شنبه با انتشار یک نامه خبری گفتند که نورالله خان یکی از رهبران طالبان و یک مجاهد دیگر را در یک حمله هوایی تیارای بدون سرنشین شهید ساختند نیروهای اعتراف میگویند که نورالله خان مسئول حمل و نقل و توزیع سلاح به مجاهدین در ولایت قندوز بوده است اما مجاهدین تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند پولیس پاکستان میگید که شش کارمند امور خیریه که پنج نفر آنها زن بودند در منطقه سوابی بازار به گروله کشته شدند. زنان کشته شده معلمانی بودند که به هنگام خروج از ساختمان یک مرکز خدمات اجتماعی مورد حمله قرار گرفتند و راننده آنها هم در جریان این حمله کشته شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را باوده نگرفته است اما تحریک طالبان پاکستان با آموزش دختران و زنان مخالفند. اخیرا مردان مسلح در پاکستان در اشتحاملات نو معمور بهداشتی را به قتل رساندن که در طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال شرکت داشتند. روز چهارشنبه شنبه نوزده سفر مطابقی دوی جنوری. نظر به خبرها خشونت روز سی زمانی زمانه آغاز شد که سربازان اسرائیلی بالباس های غیر نظامی بشری تمان داخل شدند. تا یک اوز مشکوک گروه جهاد اسلامی را دستگیر نمایند بعد از آغاز خشونت سربازان عادی اسرائیل به این منطقه داخل شده و با استفاده از گاز اشکاور های رابری و عادی باشندگان را که با سنگ و بر اسکران اسرائیلی حمله میکردن پراکنده ساختن ارده اسرائیل میگوید که دو اسکریان آن زخمی شده است با گفته ای ارده اسرائیل اوز مشکوک جهاد اسلامی به خاطر بازپرسی توقیف شده است در مراسم تجلیه از سال نوی میلادی در فرانسه در حدود دوازه ست موتر پارشده در سر, سر این کشور به آتش کشیده شدند. نظر به گفته وزیر داخلی فرانسه در شهرهای ستر تاسبورک و مولوس فرانسا برخورتها صورت گرفته و سی سد سی نفر بازده شدند. این اولین بار است که فرانسه ارقام را در مورد تعداد موترهایی که آتش زده شدند به نشر می رساند. یکی از زندانیان در ولت سمنگان زن خود را در محبس کشته است. او سه سال قبل بجرم کشتن سی از خانواده همسری خود یعنی خواهر برادر و مادر زن خود زندانی شده بود. همسری خود را که برای ملاقات او به محبس رفته بود کشت. حدیقل دو نفر در نتیجه یک انفجار کراچی کشته و حدود 35 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات میگن بمبی که در موتورسیکل کارگزاری شده بود در نزدیکی چند سرویس هنگامی منفجر شد که فعالان از یک جلسه مشترک حرکت متحد قومی و تحریک منحاج القرآن برگشتند. واقعی اخیر انفجار پس از آن به وقوع می پیوندد که انفجار روز شنبه در نزدیکی یک استادگاه مزدهم سرویس های نقلیه در این شهر شهش نفر را کشت و پینجا نفر دیگر را زخمی ساخت یک فرد در ولسوالی چپرهار ولیت ننگرهار زن خود را با هشت فرزندش به قتل دسانده و موفق به فرار شده است شنواندگانی عزیز این بوت خلاصه رویدات های یک هفته گذشته تا که در صورت بقای حیات هم خدمت شما حاضر می شویم همه شما را به خداوند یک تابه هم تا می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لا لن يدوم لهم أمالٌ لن يدوم، فلتُلهم أمالهم تهن وهي. لا لن يدوم لهم أمالٌ لن يدوم، فلتُلهم أمالهم تهن وهي. فالنصر آتٍ لا محل لا محل. حسم القدير حسم القدير حسم القدير.